آنا کرده عبادت عبادت چیئے سروران گرامی من بارها ارز کرده کہ عبادت در نغت میں معنی تزلل و آجزی ہے و در اسطلاح تعریفی ابن تیمیہ در مدالج و سالکین برای عبادت کرده که عبارت است از اون اعتقاد و شعوری که معبود یک قدرت غیبیه در علم و در تصرف دارد فوق اسباب با اون قدرت غیبیه بر نفع و ضرر قادر است هر دعا و هر تعریف و هر تازینی که با این اعتقاد انجام بگیرد که اون معبود یک قدرت غیبی دارد و با اون قدرت غیبی امید قادر نفع و سرر وارد کنه پس هر دعایی و هر تعریفی و هر تازینی که با این اعتقاد انجام بگیره این عبادت فقط خب این تعریف یک مقدر تعریف علمی هست یکی ساده من برای شما ارز کردم که عبادت یعنی گوش به فرمان خدا شدن. معنی آ اما, اما من خدا را انجام دادن و از منحیات استناب